زندگی پدرم چارلی چپلین اثر چارلز چپلین ترجمه حسن مرندی و منصور تاراجی با صدای میلاد میرزایی کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری مؤسسه انتشارات نگاه فصل اول همیشه صدای جیغی میشنیدم. اینکه این جیغ را کسی دیگر میکشید. صورت کسی را که کس سر او جیغ میکشیدن نمیدیدم اما وجود نحس او را احساس میکردم. صدای جیغ پشت سر هم در تاریکی و تنهایی مطلق به گوشم می رسید. نایهان روشن شد. داشتن مرا نوازش میکردند. کمپرس سرد روی پیشامی من میگذاشتن زیرا از ترس بدنم مثل چوب خشک شده بود صداهای آرامش ها را میشنیدم. چیه چارلی چیه خوب میشی؟ پاشو جانم بیدار شو این صدا یادم آدم واقعی بود دیگر تنها نبودم چشمانم را باز می کردم و لبخند می زدم. چون همه و بر من بودند. مادر بزرگم، مادر مادر بزرگم، مادرم و حتی گاهی پدر پدر بزرگم. سیدنی برادر کوچکم توی رخت خوابش نشسته بود و از حیرت به من چشمک می زد. من و سیدنی همیشه با هم فرق داشتیم. مثل اینکه او بهتر می توانست با تنهایی مبارزه کند. مستقل تر از من بود وقتی دو ساله بود یک روز از خانه خسته شد و به چاک زد آن طرف ساختمان پیدایش کردند هنوز داشت میرفت. من هیچ وقت چون کاری نمی کردم. ولی یک چیزی در هر دو مان مشترک بود هر دو کل شق بودیم اما کل شقی سیدنی با جنجال و دعوا همراه بود و لجاجت من آرام و بی بود. مادرمان درست نمی با ما چه کند. خیلی جوان و جساب بود. تقریباً مثل خواهر بزرگ ما به نظر می آمد. هنوز چهار سالم نشده بود که مادرمان به شهر رفت تا در ها آواز بخواند. از این به بعد ما او را گاه گاهی می دیدیم. بیشتر اوقات من و سیدنی اصلاً پدرمان را نمی دیدیم. ما هنوز خیلی کوچک بودیم که از این مطلب سر در بیاوریم که او چارلی چاپلین بزرگ است. ما تاریخ ازدواج کوتاه او را با مادرمان که به جدایی و طلاق انجامید به یاد نمیآوردیم. این داستان را من بعدها در شراکتی ناگوبار شنیدم. مادر من لیلیتا مکموری یا اگر اسم تئاتر او را بگویم لیتا گری نیم اسکاتلندی و نیم اسپانیایی انگلیسی است مادر بزرگ مادریم خانوم لیلیان گری که من و سیدنی هنوز او را نانا صدا میکنیم از طرف مادری از یک خانواده کالیفرنیایی اسپانیای اصل است اسم دختری مادر مادر لوئیزا لویزا کاریلو بود که ما او را مامان بزرگ صدا میزدیم. او در سال 1950 در سن 83 سالگی مرد. گمان میکنم لئوکاریو ستاره سینما از خیشان دون ما باشد. پدر نانا ویلیام ادوارد کوری انگلیسی بود. پدربزرگ من رابرت ارل مکموری یعنی پدر مادرم اسکاتلندی است. او و نانا موقعی که مادرم خیلی کوچک بود از هم جدا شدند. وقتی پدرم، مادرم را برای اولین بار در رستوران کوچکی در همسایگیشان که به آن رفت آمد داشت ملاقات کرد، مادرم شش ساله بود. پدرم چنان مجزوب جاذبه این دختر کوچولو شد که از هر فرصتی برای صحبت کردن با او استفاده می و با بازی چیدن چوبهای کبریت او را می بعد از آن ملاقات تصادفی، شش سال دیگر آنها یکدیگر را ندیدند. ملاقات بعدی آنها هم تصادفی بود. چک ریسنر کارگردان همکار پدرم در همان ساختمان زندگی می کرد که مادرم و مادرش نانا در آن زندگی می کردند. مادرم عادت داشت که با پسر کوچک ریسنر به نام دنیکی بازی کند. آقای ریسنر متوجه آن دختر کوچک شد. او را به بابا نشان داد و توجه او را به دختر کوچولو جلب کرد. یک روز بابا به آنجا رفت و مادرم را که در چمن جلوی خانهشان بود دید. بابا از ظاهر دخترک چنان خوشش آمد که با او قراردادی برای مدتی یک سال بست و بلا واسطه او را در فیلم کودک که در صدد تهیه آن بود همراه با جکی کوگان شرکت داد. تازگی‌ها من از جاکی پرسیدم که کار کردن زیر کارگردانی پدرم چجور بود؟ جاکی سری تکان داد و گفت من کارگردانی پدرت را درست به یاد نمی آورم. فقط می دانم که هر وقت او می خواست جلوی دوربین گریه کنم آنقدر داستانهای غم انگیز برایم می گفت که اشک از چشمم سراسیر می شد. آخر من خیلی کوچک بودم. همش چهار سالم بود. بعد صورتش روشن شد و ادامه داد ولی مادرت را یادم می آید. ما همیشه در این فیلم با هم بازی کردیم. او همیشه رو و شاد بود. بعد از فیلم کودک، مادرم و نانا در فیلم پدرم به نام طبقه تنبل نقش کوچکی برده گرفتند. بعد قرارداد مادرم تمام شد و برای چند سال او از صحنه زندگی پدرم خارج شد. شاید اگر اتفاقی نمی‌افتاد، مادرم هرگز پدرم را دوباره نمیدید. قضیه از این قرار بود که یک روز بعد از ظهر بعد از مدرسه مامان خود را به استودیوی پدرم رساند تا به یکی از دوستانش مرنا کندی ثابت کند که او واقعا چارلی چاپلین مشهور را میشناسد. مادرم قبلا این مطلب را به مرنا گفته بود و او باور نکرده بود حالا مادرم با آمدن به استودیو میخواست حرف خودش را به دوست دخترش ثابت کند در آن موقع پدرم دنبال کسی می گشت که نقش مقابل خود او را در فیلم جویندگان طلا بازی کند. وقتی مادرم را دید باز مجذوب او شد. اما این دفعه دلائل دیگری داشت. مادرم که حالا 16 ساله بود دیگر نه آن دخترک سرزنده و خنده رو بلکه دوشیزه زیبا و جوانی با چشمان میشی و موهای قهوه‌ای بود. پدرم از او خواست که برای شرکت در فیلم تحت آزمایش قرار بگیرد. مادرم قبول کرد و نتیجه این آزمایش رضایت بخش بود و پدرم برای ایفای این نقش با او قراردادی امضا کرد. بدین ترتیب بخت یا سرنوشت یا هرچه اسمش را می خواهید بگذارید باز دست از آستین درآورد و پدر و مادرم را بیش از پیش به هم نزدیک کرد. ماجرا با ازدواج ناگهانی آندو در نوامبر سال 1924 در دهکده ای امپالم مکسیک به پایان رسید. آنها از شر سالهای خبرنگاران به این دهکده دور افتاده پناه آورده بودند. بعد از این پدرم تازه روز یعنی مادرم را به خانه بزرگ تازهش در بورلی هیل آورد مادرم نقش خود را در فیلم جوگندگان تلا به احدگه جیورجیاهیل واگذاشت و خودش کتبانوی خانه شد به تغاظای پدرم نانا هم به این خانه آمد و در آنجا اقامت کرد یک سال بعد من در همین خانه به دنیا آمدم به گواهی ورقه زایمان تاریخ تولدم 28 جوانه 1920 بود محل تولدم اتاق خواب شرقی خانه بود که بعدها که ما در خانه پدرم زندگی می کردیم اتاق من و سیدنی شد قبل از تولدم پدرم خیلی نگران بود زیرا پدرم یک بار هم قبلا با دختر دیگری به نام میلدرد هریس ازدواج کرده بود و بچهشان چند روز بعد از تولد مرده بود پدرم ماها از مرگ بچهش افسرده بود چنان اندوهگین بود که خانوم حریس بعدها می گفت یکی از دلایل جداییشان همین مردن کودک نوساد بود. وقتی من به دنیا آمدم، دلیل تازه‌ای هم برای این استراب بود. بندناف من چنان تنگ به دور گردنم پیچیده بود که داشت خفه می‌کرد. پزشک ناچار شد، قطع پارچه‌ای دم دهان من بگذارد و توی آن فوت کند که من به نفس کشیدن بیفتم همچنین برای به نفس آوردن من، ضربه های سختی به بدنم زدند. بالاخره من شروع به گریه کردم و خیال همه راحت شد. قبل از تولد من، پدرم گاه گفته بود دلش دختر می خواهد. اما چون من اولین فرزند و در این حال سالم بودم، تولد مرا با رضایت خاطر استقبال کرد. اسم مرا از روی پدرم چارلز اسپنسر گذاشتند. سر این اسم گذاری هم مشاجری در گرفت. پدرم سخت مخالف این اسم بود و می گفت که داشتن نام او سبب می شود که من همیشه به اعتبار و شهرت او زندگی کنم و داشتن این اسم در زندگی بعدیم به خصوص اگر حرفی او یعنی هنرپیشگی را رو انتخاب کنم صد راه زندگیم خواهد بود. مادرم که به شخصیت تسلط او آشنا بود میدانست دانست که علت واقعی اعتراض پدرم به این اسم بودن دو چارلی چاپلین در خانواده است. به اینجه حد پافشاری کرد و بالاخره پیش برد. تا موقعی که پدر بزرگم زنده بود پدرم به نام چارلی کوچک خوانده میشد و بعد از مرگ پدر بزرگ این عنوان به من به عرض رسید. من اولین کودکی بودم که پدرم در زندگی خود با او تماس نزدیک داشت. ولی من برای او فقط یک کودک نبودم، بلکه مظهر خانه و زندگی خانوادگی و همه ی را که خود او در کودکی نداشت بودم. در واقع، مظهر تقریبا همه چیز او بودم. انسان باید این نکته را بفهمد تا پدرم را بتواند درک کند. پدرم در 16 آوریل سال 1889 در لندن به دنیا آمد. ساختمان آجری سه طبقه که زادگاه او بود و در جنگ جهانی دوم بر اثر بمباران ویران شد، در قرن نوزدهم ساخته شده بود و نمای زشت و کسالت آوری داشت. والدین پدرم تبهی بریتانیا بودند. پدربزرگم مخلوطی از فرانسوی و ایرلندی بود و نام خانوادگی چاپلین منشأ فرانسوی دارد. مادر بزرگم خون کولی های فرانسوی یا اسپانیایی را داشت و آن را از مادرش به ارز برده بود. پدرم همیشه از داشتن خون وحشی رمن در اروغ خود به خودش میبالیده است. پدر و مادر پدرم هر دو در تالارهای موزیکان روز لندن نسبتا شهرت داشتند. پدر بزرگم خواننده باریتون بود و صدای او آنقدر خوب بود که بتواند جایی برای آواز خواندن در نیویورک پیدا کند. مادر پدرم هانا چاپلین که از سن کودکی به نام لیلی هارلی روی صحنه رفت، آواز میخواند و پیانو می نواخت و مدتی عضو تروپ جیلبرت و سالیوان بود که به شهرهای انگلیس مسافرت می کرد. علاوه بر این، نقش‌های کوچکی در های مورد توجه تماشاگران آن روز ایفا می‌نمود. پدرم دو برادر ناتنی داشت. یکی از آنها ویلر درایدن مرحوم، فرزند لئودرایدن هنرپیشه بود. من گمان می‌کنم که عمو ویلر وسیله پدر خودش تربیت و بزرگ شده بود. به طوری که در آن روزها پدرم به برادر ناتنی دیگرش امون سیدنی نزدیکتر و بیشتر با او معاشرت داشت. امون سیدنی چهار سال از پدرم بزرگتر بود. بعد از آنکه هانا چاپلین از پدر سیدنی تلاخ گرفت و با پدر بزرگ من عروسی کرد، امون سیدنی به نام خانوادگی چاپلین نامیده شد. چون تصادفاً به ناپدری خودش شباهت داشت. بعضی می که او از بسیاری لحاظ بیش از پدرم به پدر بزرگم شباهت دارد. اغلب او را کاملا از خانواده چاپلین می دانستند. فرزندان پدر و مادر هنرپیشه پیشه طبعا زندگیشان دائماً در تغییر است. به خصوص بعض پدرم خیلی در خطر بود. زیرا پدر بزرگم چاپلین معتاد برکل بود و به همین علت نمیتوانست توانست درست و حسابی به خانواده خود برسد او در حدود سی سالگی بر اثر بیماری های ناشی از افراد در الکول مرد. تقریبا از همان اوائل پدرم کودکی بی پشتا پناه بود. اغلب از سرما و گرسنگی رنج می برد. وقتی 5 ساله بود بلایی به سرش آمد که در تمام عمرش خاطر آن را با ترس و وحشت به خاطر می آورد. او و امون سیدنی را مادرشان به دارالای تام سپرد. چون دیگر از اخته مخارجشان در خانه بر نمی پدرش او را تنها گذاشته بود و اکنون نیز مادرش او را رها می‌کرد. کرد. یا به نظر کودک پنج ساله ای چونین در دارالایتام نه خوراک و نه پوشاک کافی گیر می‌آمد. بچه‌ها همیشه سردشان بود و گرسنه بودند به گناه فخر و نداری مانند جنایتکاران بانند رفتار می‌کردند. انضباط سخت و شبیه سربازخانه بود به آسانی می میتوان تصور کرد که در اواخر قرن گذشته که به انضباط کودکان بسیار شدیدتر از امروز توجه میشد معنی این انضباط سخت دارالیتام چیست شلاق زدن محروم کردن از غذا حبس انفرادی کیفر کوچکترین نافرمانی گویا کوشش مقامات دارالایتام بر این متمرکز شده بود که اراده و روحی اطفال تحت سرپرستیشان را خورد کنند. در دو سالی که پدرم در دارالایتام بود، مادرش کمتر به ملاقات او می رفت و او بر تنهای پدرم یفزود. اما وقتی هفت ساله شد، مادرش آمد که او را دوباره به خانه ببرد. در ورقه مرخصی او چنین نوشته شده است. سیدنی چاپلین به مادرش مسترد شد. به مارس 1896، چارلز هم همچنین. پدرم به صورت پسری آرام و معدب در آمده بود. یا لعاقل سیریل هولدن او را برایم چنین وصل می کند. آقای هولدن که پسر فرد هولدن مدیر سابق تئاتر کانتربوری و درست همسال پدرمان است، در هشت سالگی مرتب او را می دید. زیرا پدر بزرگم چاپلین قبلا در تاعتران ها بازی می کرد. پدرم رفتاری را که فقر به انسان می آموزد خوب فرا گرفت. فقط مواقعی که آقای هولدن به چشمان آبی روشن پدرم خیره میشد شد می توانست چیزی شکست ناپذیر و مصممانه و عظیم که با جسته یک این پسر جور در نمی آمد ببیند. اگر میخواهید آن را روح بزرگ وی بنامید وقتی هیچ چیز در زندگی برایش نمانده بود، همین روح بزرگ او را زنده و سر پا می می‌داشت. یک بار به من گفت، "باید به خودت اطمینان و عقیده داشته باشی. راز کار من این است." حتی وقتی در دارالایتام بودم، وقتی در خیابانها پرسه می‌زدم تا چیزی گیر بیاورم و بخورم که از گرسنگی نمیرم، حتی در آن مباقه هم من خود را بزرگترین هنرپیشی جهان میدانستم. من آن اطلاعی را که از این اعتماد به نفس حاصل میشود حل کردم. بدون آن محکوم به شکست بودم. پدرم به این روییا احتیاج داشت. دوران رفاه خانواده او موقتی بود و طولی نکشید که او باز به گرسنگی و برهنگی افتاد و در خیابانها آواره شد. اما او دوباره به دارالیتام نرفت. تقریبا مانند ویلگردان خیابانهای لندن شده بود. برای زندگی که میکرد. کرد. هر شب می آمد می خوفت و به زحمت می خود را زنده نگاه دارد. حیکر او که به طور طبیعی باریک و دراز بود چنان پشمرده شده بود که سر زیبایش بر شانه های باریکش قریب مینمود. در محله های فقیر و پر ازدهام لندن که غالبا ناهمه را موضوع مزحک می سازند، او را دست می و شوخی های زلنده با او می کردند. هنوز هم مطرود بود اما لااقل آزادی داشت. گاه گاهی خوشبختی به او رو می آورد و کار تصادفی گیر می آورد که زندگی را تأمین کند. در آرایشگاه ها ریش مشتریان را با فرچه سابون می زد. در کاباره سرایداری می کرد یا یعنی اینکه جای پای پدر و مادرش قدم می گذاشت و در نمایش سبک ایفای نقش کمدی یا رقصی را به عهده می گرفت. مدت درازی عضو دسته هشت جوان لانکا شایر بود و تأمین نسبی تا آنجا که احتیاجات بدنی او را برآورده کند داشت ولی از جنبه های دیگر این وز رنج می برد این دسته سفرهای طولانی به شهرهای معدنی شمال انگلستان میکرد. روی این شهرهای کسل کننده، هوای سرد و مرتوب و دودآلود سنگینی میکرد. دعوای پرصدای های در خیابانها همیشگی بود و دیدن آنها از مانند درد بدنی در پدرم میگذاشت. همچنین از شبهای دراز و تنهایی که با هم جوانش، در اتاق های سرد و کوچک و پر جمعیت میگذراند و از دوری و از یار و دیار و بیمادری رنج میبرد. بیپدری و بیمادری شاید این دو کلمه بزرگترین نخسان بودند که پدرم در دوران کودکی حس میکرد. یک بار از قول او نقل کرده بودند فقط عشق مادر پایدار است. اما من گمان نمیکنم او هرگز این عشق را حس کرده باشد او بارها به مردم گفته بود که این فقر بوده است که زندگی کودکی او را سیاه کرده بوده است اما در حضور پدر بزرگ مادریم قبول کرد که آزردگی او منشعه امیختری داشته و آن این بود که مادرش در هنگامی که بیش از همه وقت به وجود مادر احتیاج داشته او را تنها گذاشته است برای آنکه تراژدی دوران جوانی او کامل تر شود، مادرش به بیماری روحی گرفتار شد که تا آخر عمر او را ترک نکرد، بلکه با گذشت سالها شدیدتر تر شد. بیماری مادرش بسیار شدید و تهاجمی نبود، بلکه مثل آن بود که خود را از دنیای واقعیتها کنار کشیده و آن را ترک کرده است. چه بسا نمی توانست فرزندانش را بشناسد و تشخیص دهد. از این رو ناچار در بیمارستان بستری شد. بیماری ما بزرگم باید اثری عمیق بر روح و فکر پدرم گذاشته باشد. زیرا او در سالهای بعد اغلب با من و سیدنی از آن سخن می گفت و این مطلب که پدرم آن را سبک میگرفت و اظهار ناراحتی شدیدی نمی کرد، ما را فریب نمیداد. او می گفت خدا را شکر که چهار ستون بدن شما سالم است و عادی هستید. البته ممکن بود طور دیگری هم باشید. چون در خانواده ما یک چیزی هست. یک چیزی هست. آه من برای شما خیلی نگران بودم. او با شوخ تبعی سخن می گفت. ولی بعد چنان روی میز میزد که گفتی به یاد آوردن این بیماری خانوادگی سبب می شود که خانواده ما را این بیماری تهدید کند و از این لحاظ ناراحت می شود. این حیولاها، سی ماهای غم مادر بزرگ و پدر بزرگ، خیابانهای تیره کنینگتون آن شب نظر می آمد که تصویر پدرم در زمینه این های و با استرابی بیش از استرابی یک مرد برای نخستین فرزندش به من می نگرد دکتر خندان به او اطمینان داد که من از هر لحاظ سالم و طبیعی هستم